بچه ارا قبل از 120 روز باشه ان قاوله دیگه بچش شکلی بگیره و رو داخلش بیاد اگر ثابت شد و قطعاً ثابت شود یک پزشک نه با متخصص باشه مسلمان باشه و چند یک کمیسون پزشکی تشخیص بده این خطر داره بعدش سیخ کنه قبل از این که روز مزغه است که گوشتی است ان بعد از ماه سیخ کردنش جایز نیست قطعاً جایز نیست مگر اینکه مرگ مادر قطعی باشه مرگ مادر پزشک متخصص این مادر میکشه اون در صورتی که با داره اما بعضی میگه همیشه تماس میگیرن بیماراطی سونوگرافی میگه بی بچه که قلب نداره حالا بیان دارن ما گفتم نه بچه بی قلب زنده نمی چون همه انسان ها که زنده قلب داره تا خودش میمیره بعد این که میرا سونوگرافی اینو به می‌یاره های پزشکی سونوگرافی فقط سی درصد بیماری رو تشکیل میده. یعنی نصف هم نیست. این سونوگرافی انجام شد انجا انجا کشید خانوما، اونجا دید برایی که زودتر پیش آگاه تشویق برا ن، حتی رشوه هم میدن. این بیماری فقط سی درصد معلوم میشه. اصلا با سونوگرافی بیماری مشخص نمیشه. فقط سی درصدش. خیلی، خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. بخاطب با خاتر یه نظر سونوگراف و چهارم داشت جایز نیست خیلی آمی رنی بچه دختر میا. پسر میاد میگه پسر دختر میاد مگر نکته یی؟ با این که این در سونوگراف داری میگه نه با چهارم جایز نیست مگر یکی همون شرایط کلی باشه.